کتاب فرهنگ افثانه های مردم ایران جلد ششم نویسندگان علی اشرف درویشیان و رزا خندان محابادی ارائه شده از کانال تلگرامی هزار افسان داستانهای افثانه ای سوتی به مدیریت محمد جواد بوستانی و گوینده ناهید شافق سلام به مخاطبان و همراهان همیشگی کانال هزار افسان جایی که قصه هایی که هم و افثانه های پر رمز و راز جان میگیرند امروز داستان چند قسمتی ریحان خانم رو براتون روایت میکنیم. داستانی زیبا و جذاب پس تا انتهای داستان با ما باشید و لذت ببرید افسانه بلند ریحان خانم یک افسانه آذری است که به وسیله احمد آزر افشار به فارسی برگردانده شده این افسانه از چند افسانه فرعی ساخته شده و با رعایت هماهنگی بین اجزای آن به پیش می رود. به نظر می رسد که چنین افسانه هایی برخی از زمینه های به وجود آمدن داستان ها و رمان های پر پرحجم بعد رو فراهم ساختند. قصه چون سمک عیار و امیر ارسلان مشابهت هایی گرچ اندک، با داستانهای بلند و رمان امروزی دارند. روایت ریحان خانم روایتی اقتباسی است و از زبان و روال افسانه‌های عامیانه برخوردار نیست. از آنجایی که یکی از کارهای انجام شده در زمینه افسانه‌های عامیانه اقتباس است، نمونه‌ای از آن را با اندگی حزم و ویرایش نقل می‌کنیم. کی بود و یکی نبود، زیر گنبد کبود، غیر از خدا هیچکس نبود. در روزگاران دور پادشاه ست همکاری بود به نام اصد. روزی از روزها این پادشاه با چند تن از دوستان و وزیرش به شکار رفته بودند. سر راهشون از کنار خونه گاف چرونی گذشتند. گافچرون دختر خیلی زیبایی داشت که اتفاقا خیلی هم باهوش بود. دختر مشغول آب و جاروی در خونه بود که پادشاه او رو دید و از زیبایی دختر متعجب شد و به قول معروف یک دل نصد دل آشق دختر گافچران شد. اما به کسی چیزی نگفت و به شکارگاه رفتند و به تفریح و شکار پرداختند. بعد از شکار و تفریح و خوشگذرانی وزیر رو صدا زد و پرسید وزیر آیا دختری رو که در کنار خونه گافتران مشغول آب و جارو بود دیدی؟ وزیر پاسخ داد بله قربان دختر بسیار زیبایی بود شاه دوباره پرسید اگه بخواییم بفهمیم دختر کیست چیکار باید بکنیم؟ وزیر پاسخ داد خیلی آسونه وقتی به خونه گافچرون رسیدیم شما اسب ها رو آهسته برانید و من به خونه گاف چرون میرم و درباره اون پرسجو جو می کنم پادشاه این فکر رو پسندید و گفت وزیر دختر هر کس که باشه من اونو برای حرم خونه خودم میخوام پس هم میپرسی دختری کیست و هم خواستگاریش میکنی وزیر خیلی محتاطانه لبخندی زد و گفت پادشاه ها بهتر خاستگاری رو بذاریم برای بعد. الان صورت خوشی نداره. پادشاه ابروهاش رو در هم کشید و گفت هر کاری که میگم انجام بده. ضمن اینکه که میپرسی دختر کیست اونو خاستگاری هم میکنی. وزیر که با خلق خوی شاه آشنا بود، دیگه روی حرف اون حرفی نزد. اونها از پا رو راندن تا به خونه گاف چرون رسیدن. وزیر رفت و در خونه رو زد. کسی که در باز کرد گلندام یعنی همون دختری بود که شاه اون رو دیده بود و عاشقش شده بود. وزیر از دختر پرسید در خونه تون مرد هم هست؟ گلندام گفت خود من مرد هستم. از اسب پیاده شوید وزیر پرسید دخترچان تو دختر کی هستی؟ دختر گفت دختر گافچران چران؟ وزیر گفت پس پدرت کجاست؟ و دختر گفت به چراکا رفته؟ وزیر گفت وقتی که پدرت اومد بهش بگو که وزیر اومده بود و گفته که در خونه بمونی تا زمان قروب سری به تو بزنم. گلندام اسم وزیر رو کشید قلبش به تفش افتاد و پیش خودش گفت ایداد چه اتفاقی افتاده وزیر بیخود اینجا نمیاد وزیر دهنه اصف رو کشید و به نزد شاه رفت و گفت قبله عالم اون دختر زیبا دختر گاف چرانه شاه پرسید خواستگاری کردی وزیر پاسخ داد قربان هیچکس در خانه نبود به دختر گفتم به پدرش بگه که در خونه بمونه تا هنگام غروب با او صحبت کنم شاه که عادت کرده بود همیشه هر چیز رو که اراده میکنه بلا فاصله براش فراهم کنن، اکنون از اینکه میشنید باید تا قروب صبر کنه تا گاوچران به خونه بیاد ناراحت شد و گفت: حرفت رو میزدی و اونو بر میاشتی و می اومدی. حالا که این طور شد قروب که رفتی بازرور هم که شده اونو بیار. وزیر گفت به روی چشم. هنگام غروب وزیر به خونه گاوچرون رفت و گاوچرون هم که مرد بسیار مهمان دوستی بود به گرمی ازش استقبال کرد و با احترام زیادی به اون گفت جناب وزیر خیلی خوش اومدی خونه ما رو روشن کردی. وزیر در پاسخ تعارف های گاوچران چیزی نگفت و در بالای اتاق روی توشک نشست و گفت منظور من از اومدن به اینجا اینه که به شما بگم شاه شما رو مورد لطف و مرحمت قرار داده و میخواد دخترتون رو به حرم خونه ببره برخیز بهش بگو که آماده بشه تا اون رو با خودم به سرای شاه ببرم گافچرون خندید و گفت خدا از شاه راضی باشه که چنین لطفی به ما میکنه اما ما خودمون رو لایق این خوبی نمیدونیم. دختر من دختر یک گاوچرونه و شایسته ی حرم خونه ی پادشاه نیست. وزیر گفت شاه از دختر شما خوشش اومده. اگه راضی هم نباشید اون رو به خونه ی خودش خواهد برد. پس بیاید و با رضایت اون رو همراه من کنید. گافچرون گفت اگه به زور باشه حرفی ندارم اما مطمئن باشید که من هرگز دخترم رو به میل و رقبت روانه ی خانه شاه نمی کنم. وزیر هرچه گفت و تهدید کرد گافچرون زیر بار نرفت. وزیر پیش شاه برگشت و گفت ماجرا از این قراره. شاه عصبانی شد و فریاد زد مگه نگفتم به زور هم که شده اونو با خودت بیاری. وزیر ریاکار و متملق دست به سینه ایستاد و گفت قبل یه عالم فردا که گاوچرون گاوها رو به چراهگاه میبره به خونش میریم و دخترش رو به زور میاریم وگرنه اون با رضایت تن به این کار نخواهد داد پادشاه بی‌صبرانه منتظر فردا شد. صبح فردا وزیر با گروهی از سواران دربار به خونه گافچرون رفت. و همونطور که انتظار داشت، گافچرون به چراگاه رفته بود و دختر و همسرش توی خونه تنها بودند. وزیر دستور داد که دهان دختر را با دستمال بستند و اون رو به زور به حرم خانه شاه بردند. گلندام وقتی به حرم خانه رسید دید که دختران جوان زیادی هم اونجا هستند که همگی رو با زور به اونجا آوردن و متوجه شد که فعلا جز سکوت و تحمل ظلم کاری از دستش بر نمیاد و هنگامی هم که به زور اونو از خونه بیرون میکردند به مادرش گفت سکوت کنید و از روی عصبانیت و شتاب دست به کاری نزنید که اوضاع از این هم ممکنه که خرابتر بشه یک سال گذشت و گلندام از شاه صاحب فرزندی شد به نام مراد پادشاه هغچه دلش نمیخواست که از دختر گاوفچران صاحب فرزندی بشه اما بالاخره اتفاق افتاده بود و مراد به دنیا اومده بود و بعد از به دنیا اومدنش اون رو به دایس پردن و در هفت سالگی هم اون رو به مکتب خونه فرستادن و تا هجده سالگی خوندن و نوشتن و همه علومی رو که اون زمانها توی مکتب خونه‌ها ها تدریز آموخته بود. و البته در کنارش به ورزش هم پرداخته بود و حالا جوونی بسیار عاقل و فهمیده و ورزیده شده بود و پادشاه هم دیگه اون رو بیشتر از بقیه فرزنداش دوست داشت و اما روزی پادشاه مراد رو صدا زد و به اون گفت پسرم حالا که تو جوون دانا و برومندی شدی زمان اون رسیده که برای خودت تشکیل خونه و خونواده بدی و من میخوام که دختر وزیر رو برات خاستگاری کنم. نظرت چیه؟ مراد قبل از اینکه اظهار نظری کنه از پدرش اجازه گرفت و پیش مادر رفت و گفت مادرجان پدرم به من میگه که میخواد دختر وزیر رو برام خواستگاری کنه. من چطور میتونم به اون پاسخ رد بدم؟ آخه من تصمیم ندارم که ازدواج کنم. گلندام خانم گفت پاسخ رد به اون نده، بزار برات به خستگار دختر وزیر بره. اگه اختیار ما دست به خودمون بود، من هیچ وقت همسر پدرت نمی شده. مراد از شنیدن گفته های مادرش قانع نشد. از پیش اون خارج شد و به خونه یه پدر بزرگش رفت. وقتی به خونه یه چرا چرون رسید، تمام ماجرها رو براش تعریف کرد و از اون پرسید پدر بزرگ، تکلیف من چیه؟ من نمیخوام با دختر وزیر ازدواج کنم. گافچرون گفت کار بسیار خوبی میکنی. ها و وزرا و درباریان و اعیان و اشراف اصولاً آدمهای زیاد خوبی نیستن. هرچه که ازشون دوری کنی بهتره. اما من با چوبان فقیری دوست هستم که دختر زیبا و ای داره. اگه بخوای پیش اون میرم و دخترش رو برات خستگاری میکنم. مراد گفت پدر بزرگ حالا که اینطوره من فردا به پدرم جواب رد میدم. گافچران گفت نترس. هرچند که پدرت آدم ظالمی هست اما به تو کاری نداره. مراد از پدر بزرگش خداحافظی کرد و به خونه خودش برگشت. از شدت ناراحتی شام نخورد و تا صبح خواب به چشمش راه نیا صبح زود پدرش اونو صدا زد و گفت پسرم امروز میخوام دستور بدم که مراسم عقد و عروسی شاهانه ای رو برات ترتیب بدم برو به مادرت بگو که آماده باشه مراد اگرچه که ابتدا نتونست چیزی بگه اما عاقبت گفت دلم نمیخواد که ازدواج کنم. همین که مراد این حرف رو زد خنده از روی لبهای شاه محو شد و با خشم فریاد زد. چطور نمیخواهی ازدواج کنی؟ چطور جرعت میکنی روی حرف من حرف بزنی؟ مراد گفت حالا که شما تصمیم گرفتید من ازدواج کنم پس دختر چوپان رو برام خاستگاری کنید. پادشاه از شدت خشم به خودش لرزید و چشمش مثل کاسه خون شد و پاهاش رو محکم به زمین کوبید و فریاد زد این پسر و مادرش رو هر چه زودتر از قصر و بارگاه من بیرون کنید. بلافاصله فاصله مراد و مادرش رو از قصر بیرون کردند. مراد در کنار شهر دخمه مخروبه و متروکهای ای رو تعمیر کرد و با مادرش در اونجا مود. و بعد از سه روز هم گافچران به خونه دوستش چوپان رفت و ریحان خانوم رو برای مراد خواستگاری کرد و روز بعد هم ریحان خانوم رو با گروهی نوازنده به خونه مخروبه مراد بردند این نوع و تازه داماد و روزای خوششون رو اینجا میذاریم و میریم پیش شاه اسد تا ببینیم او چه میکنه شاه اسد وقتی که دید پسرش حاضر نشد با دختر وزیر ازدواج کنه و با دختر چوپان فقیبی هم ازدواج کرد، گرورش جریهدام شد و خشمش به کینه تبدیل شد. اون دنبال بحانهی بود تا او رو گرفتار و حلاق کنه. و چون مدتی با این افکار کینه توزانه دست بگریبان بود، شبیه کابوس حولناکی دید و حراسان از خواب بیدار شد. اعیان و اشراف و رمالها و منجمین و ستاره شناسان رو فرا خواند و در حالی که از ترس رنگ به رخ نداشت و عرق از سر و صورتش میریخ با صدای لرزانی گفت من امشب در خواب دیدم که از دهان زن مراد آتش بیرون میریزه و این آتش مثل رعد و برق شتابان و نعر زنان تمام قصر و بارگاه من رو به تلی از خاکستر بدل کرد هر کدوم از منجمین و ستار شناسان و رمال ها خواب پادشاه رو به گونه تعبیر کردند. و سرانجام رمال پیری حرف آخر رو زد تعبیر او چنین بود که ای پادشاه بزرگ ستارگان و کواکب چنین میگن که پسرت مراد از همسرش ریحان خانون صاحب فرزندی میشه که تو رو خواهد کشت و تاج و تختت رو سرنگون و ویران خواهد کرد. پادشاه که در آتش خش میسوخت گفت من از اولم میدونستم که نه تنها از وجود اینها سودی آیدم نمیشه بلکه یقین داشتم که بلای جانم خواهند. اس اینکه شاه لباس قرمز پوشید و بر بالای تخت رفت و فرمان داد که مراد را بیاورند ماموران شتابان به خانه مراد رفتند و اونو آوردند شاه پای بر زمین کوبید و فریاد زد جلاد جلاد فوراً حاضر شد و چون شاه رو خیلی عصبانی دید برخلاف همیشه که دست به سینه میایستاد و منتظر فرمان بود این بار با صدای لرزانی گفت قبل عالم من حاضرم هر کسی رو که امر بفرمایید به سزای عملش برسونم. شاه به مراد اشاره کرد و در این لحظه مراد گفت ای پدر تاج دارم رحم داشته باش آخه گناهی من چیه که فرمان قتلم رو صادر می شاه که خون جلوی چشماش گرفته بود و دهانش کف کرده بود گفت گناهات خیلی زیادند جلاد زود باش و فرمانم رو اطاعت کن. جلاد به سمت مراد رفت تا فرمان رو اجرا کنه. اما در این لحظه وزیر با اشاره به او فهموند که کمی تعمل کن. و در همین هنگام خودش رو بر روی پاهای شاه افکند و ملتمسانه گفت ای شاه بزرگ اگه پسر خودت رو بی گناه بکشی همه پادشاهان و فرمان روایان سرزمین های دور و نزدیک تو رو پادشاه بی و سنگ دلی خواهن پنداش خشم خودت رو مهار کن یکم فکر کن و در مورد فرمانه که صادر کرده ای تجدید نظر کن اگه از پسر بیم و حراس داری و نمیخوای آزاد باشه، اونو برای همیشه زندانی کن تا خیالت آسوده باشه. اونم مثل سایر زندانیان زیاد دوام نخواهد آورد و خودش در گوشه زندان جان خواهد سپرد اون وقت مردم دست تو رو که پدرش هستی به خون او آلوده نخواهندی. عزیزان من، مراد زندانی شد و ریحان خانوم هم مدام از غم و غصه او گریه میکرد تا اینکه در روز و ساعت و دقیقه مشخص پسر زیبایی به دنیا آورد و نامش رو زمان گذاشت و اما جاسوسان اسدشاه پنهانی ریحان خانوم رو زیر نظر داشتند و به دنیا آوردن فرزندش رو به شاه خبر دادند و شاهم که کینه بزرگی از مراد و همسرش داشت نمیتونست کودک شیرخار اونها رو هم تحمل کنه. پس به یکی از جلادانش دستور داد که هر چه زودتر به خونه ی ریحان خانوم بره و نوزاد رو از بین ببره و جسدش رو براش بیاره. جلاد با ترس و لرز به آرومی گفت ای پادشا اون تفل معصوم چه گناهی کرده که من باید اونو بکشم. اما شاه عصبانی تر شد و گفت این جسارت ها به تو نیومده برو و فرمان رو اجرا کن. جلاد بیچاره هم از ترس لب فرو بست و حراسان از اونجا خارج شد و راه خونه ریحان خانون رو در پیش گرفت. به خانه او وارد شد و کودک رو از گهواره برداشت و تا اون رو ببره و فرمان ظالمانی شاه رو اجرا کنه. ما در سر راه جلاد رو گرفت و از او پرسید این طفل معصوم رو کجا میبرید؟ جلاد گفت شاه فرمان قتل او رو صادر کرده منو ببخش من مامورم و معذور. ریحان خانم که شدیدا ناراحت و عصبانی بود فریاد زد آخه این کودک شیرخار مرتکبه چه جور می شده که اصد فرمان قتلش رو داده و تو هم میگی من معمور و معذورم و باید فرمانش رو اجرا کنم؟ جلاد گفت باید بری و از شاه بپرسی که این دستور رو داده من گناهی ندارم. ریحان خانوم که جلاد رو مصمم دید بی اختیار اشک از چشاش سرازیر شد و در میان گریه و زاری التماس کرد امان بده جلاد به من رحم کن نه ماه درد و رنج و عذاب کشیدم تا این بچه به دنیا اومد شاه از مدتها پیش پدرش رو دستگیر و زندانی کرده اکنون تنها امید من این بچه است اما جلاد نبه عشقهای ریحان خانوم که بر روی گونه هاش می قلطیده اتنایی کرد و به التماس های آن مادر دل شکسته کودک رو برداشت و به گورستان رفت و دستهاش رو به دور گردن نوزاد حلقه کرد که اونو خفه کنه اما درست در همین لحظه کودک لبخندی زد که دستهای جلاد سوس شد و از کار بازموند کودک رو در بقل گرفت و به چهره زیبا و چشمهای درخشان و شادش نگریز. درمانده و مستحصل به این میاندیشید که آیا به وزیفش عمل کنه یا به ندای وجدانش. در همین حالت سردرگمی بود که چوپانی چماق به دست از راه رسید و از او پرسید ای جلا اینجا چه می نکنه اومدی گردن مرده ها رو بزنی؟ جلاد پاسخ داد شاه دستور داده این کودک بیگناه رو بکشم اونو اینجا آوردم تا دستور شاه رو اجرا کنم چوپان خندید و گفت عجب پس بزرگترها تموم شدند و حالا نوبت به کوچکترها رسیده جلاد گفت بله انگار که همینطوره ای چوپان اسدشاه دستور داده این بچه رو بکشم اما واقعا نمیتونم این کارو انجام بدم از طرفی هم شاه گفته باید جسد کودک رو براش ببرم تا ببینه و مطمئن بشه که فرمانش رو اجرا کردم. و اگه این کار نکنم نسلم رو از روی زمین بر خواهد دار. تو بگو من بیچاره چه کار باید بکنم؟ چوپان قاه قاه خندید و گفت احمق جان چاره این کار بسیار ساده است. این بچه رو به من بده و من جسد یه بچه مرده به تو میدم بچه مرده رو نزد شاه ببر و به اون نشون بده اون که علم قیب نداره بفهمه این جسد کیه فکر خواهد کرد جسد همین بچه است جلاد گفت بسیار خوب اگه این کار رو بکنی همین بچه از مرگ نجات پیدا میکنه و هم من از وعذاب وجدان راحت میشم. چوبان در گورستان گشتی زد و قبر بچه ای رو که تازه مرده بود پیدا کرد و با چوب دستی خودش گور رو کند و جسد رو بیرون آورد و به جلاد داد و گفت بیا اینم جسد یه بچهی تازه مرده جلاد خیلی خوشحال شد و بوسهی بر پیشانی یه کودک زد و گفت حالا که از مرد نجات پیدا کردی شاید وقتی بزرگ شدی بتونی که از اسدشاه انتقام بگیری نوزاد باز هم خندید و جلاد کودک رو به چوپان داد و چوپان پرسید خب حالا این بچه مالکی هست جلاد پاسخ داد نوی اسدشاه است پسر مراد چوپان گفت به عجب روزگاری جلاد با جسد یک کودک از اونجا رفت و چوپان هم کودک رو که از مرگ نجات داده بود بغل کرد و به خونه برد. پادشاه هم جسد کودک خورد سال رو که دید لبخند پیروز مندانه ای زد و گفت آفرین حالا میتونی ببری و اون رو دفن کنی. اکنون به کلبه محقر و کوچک ریحان خانوم این زن جوانی که به جای شادی غم و اندو نصیب شده. بریم و ببینیم که او چه می کنه ریحان خانم که اندک زمانی پس از ازدواج شوهرش رو ازش جدا کرده بودند و به زندان انداخته بودند و بعد از مدتی نوزاد دلبندش رو هم ازش جدا کردند تا به فرمان اسد شاه به زندگی کوتاهش پایان بدن خیلی افسرده و اندوهگین شده بود و اونقدر در تنهایی به شوهر و فرزند دلبندش فکر کرد تا اندیشه انتقام در ذهنش پرورش یافت و رشد کرد. و سرانجام به این نتیجه رسید که انتقام از اسدشاه وظیفه مقدس اونه. فردای همون روزی که تصمیم نهایی رو گرفت، لباس رزم پوشید و شمشیر و سپر و نیزه و تیر و کمان برداشت و سوار بر اسب راه ساحل دریا رو در پیش گرفت. در کنار دریا قلعه بزرگی بود که سالها کسی در اون زندگی نمی کرد. اونجا رو به عنوان مسکل خودش انتخاب کرد. ریحان خانم زن رشید و بیباکی بود و از هیچ کس و هیچ چیز واهمه ای نداشت. روزها در قلعه میموند و شبها به شهر می‌رفت و به افراد و داروغه شاه حمله می‌کرد. کرد. اونا رو از بین می‌برد و اموال و اصلاحه اونها رو با خودش به قلعه می برد. به زودی آوازه شخصی که به افراد شاه حمله میکنه در شهر پیچید و کسانی که از ظلم و ستم اصد شاه و اعیان و اشراف وابسته به اون، به سطوح اومده بودن یکی یکی به او پیوستن و پس از مدت کمی ریحان خانم گروهی افراد مسلح رو دور خودش جمع کرد. این افراد دیگه نمیذاشتن که آب خوش از گلوی شاه پایین بره. خواب رو بر چشمان او حرام کرده بودن. هر روز و هر شب به شهر یورش میبردند و طرفداران شاه رو از بین میبردند پهلوانان زورمند اسدشاه کشته شده بودند و لشکریان نیرومندش هم از بین رفته بودند روزی از روزها اسدشاه وزیر خودش را فراخوند و به اون گفت بیشتر از نیمی از لشکریانم هلاک شدند پهلوانانم نابود شدن، اما هنوز نمیدونم که دشمنم اصلا کی هست و نمیدونم این ضربه های هولناک از کجا بره پیکره حکومت من وارد میشه. سه روز بهت مهلت میدم تا بفهمی که کیه که اینطور بیباکانه تصمیم به نابودی ما گرفته. وزیر که از ترس چارهی جز تسلیم نداشت به عنوان اطاعت دست بر روی چشم گذاشت و از بارگاه خارج شد نگران و مسترب بی اراده به هر طرف راه میرفت و در پی چاره بود. که دوست تاجر خودش رو که مرد زیرک و هیلهگری هم بود به یاد آورد با گامهای سریع خودش به خونه ی تاجر رفت و بعد از سلام و احبال پرسی به اون گفت دوست عزیزم همونطور که میدونی افرادی شباب شهر حمله میکنند و پهلوانها و افراد لشکر ما رو از بین میبرند شاه از من خواسته که رهبر اونها رو شناسایی کنم. آخه من چطور میتونم بفهمم که اون کی هست؟ تاجر گفت جناب وزیر تو نمیتونی بفهمی این افراد کیا هستن و یا رهبرشون کیه ولی شاید من بتونم به این راس پی ببرم و اونا رو شناسایی کنم. وزیر که روزنه امیدی براش پیدا شده بود خوشحال شد و گفت بسیار خو اما باید عجله کنی یا زودتر دست به کار بشی وگرنه اسدشاه منو خواهد گشت. تاجر به اون قول داد که حتما این کار رو به زودی انجام خواهد داد و گفت که خیالت راحت باشه و اصلا نگران نباش وزیر هم قوت قلبی پیدا کرد و خانه دوستش رو ترک کرد این بود آغاز ماجرای داستان لیحان خانم اما ماجرا هنوز ادامه داره در قسمت بعدی همراه ما باشید تا ببینید این داستان زیبا چه سرانجامی خواهد داشت و چه رازهایی از دل این افسانه بیرون خواهد آمد تا روایت بعدی در پناه عشق و نور الهی باشید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 همه و همه و همه در کانال ترگرامی هزار افسان داستانهای افثانه ای سوتی مهران دوستی